داستان هفت سیمون تو دورترین گوشه این جهان، اون طرف دریاها و اقیانوسها، شهر زیبا و با وجود داشت که پادشاهی به اسم آرکیج در اونجا زندگی میکرد. این پادشاه خیلی مهربون و ثروتمند و زیبا بود. سپاه اون از آدم تشکیل تشکیل شدند که دستورات پادشاه خودشون رو بیچون و چرا انجام میدادن. آرکید صاحب دهها شهر بود که هر کدوم هم قصرهای مجللی توشون وجود داشت. درهای این قصرها از جنس نقره، سقفشون طلایی و پنجرههاش از جنس بلور بودن. مشاورای پادشاه هم دوازده نفر از باهوشترین افراد کشورش بودن. این افراد همیشه همه ی حقایق رو به گوش پادشاه می رسوندن. حالا دیگه پادشاه این کشور هیچ کم بودی نداشت که احساس خوشبختی نکنه. ولی از هیچ چیزی لذت نمیبرد چرا که هنوز نتونسته بود برای خودش همسری انتخاب بکنه. یه روزی از روزها پادشاه توی قصر خودش که مشرف به دریا بود دید که یه کشتی توی بندری لنگر انداخته و یه تعداد بازرگان از اون پیاده شدن و در حال قدم زدن کنار ساحل هستند. پادشاه با خودش گفت این افراد بعد گذشتن از سرزمین های متعددی به اینجا رسیدن. بهتره که از اونها سوال کنم که آیا سر راه خودشون با شاهزاد خانومی روبرو شدن که توی تیزهوشی و زیبایی هم تراز با من باشه؟ به خاطر همین پادشاه بازرگان ها رو پیش خودش احضار کرد. زمانی که اونها پیش پادشاه رسیدن پادشاه بهشون گفت اینو میدونم که شما از سرزمین ها و مکانهای شگفت‌انگیز عبور کردید و به اینجا رسیدید میخوام ازتون سوالی بپرسم دلم میخواد جوابش رو راست و درست به من بگید آیا تا به حال در مورد دختر یه پادشاه یا یه امپراتور حرفی شنیدید یا اون رو جایی دیدید که توی هوش و فراست و خوشچهره بودن هم ترازه با من باشه و لیاقت همسری منو داشته باشه و بشه ملکه کشورم. بازرگانا مدتی فکر کردن. آخرش مسنترین اونها گفت آلی جناب شنیدم که اون طرف دریا و توی ای به نام بوسان پادشاه مقتدری زندگی میکنه که دخترش شاهزاده خانم هلنا خیلی زیباست. البته مطمئنم که خوش سیماتر از شما نیست اما خیلی باهوش و زرنگه. حتی آلمترین ریش سفیدام نمیتونن پاسخ چیستانهای اون رو حدس بزنن. پادشاه پرسید این جزیره خیلی از اینجا فاصله داره؟ توی کدوم قسمته؟ بازرگان پیر جواب داد خیلی هم نزدیک نیست. رسیدن به اونجا ده سال طول میکشه در ضمر نمیدونم که تو کدوم قسمت واقع شده اگرم میدونستم مشکلی رو حل نمیکرد چون این شاهزاده خانوم نمیتونه همسر شما بشه پادشاه با لحن عصبانی سر بازرگان پیر فریاد کشید و گفت چطور جرئت میکنی اینطوری ای حرف بزنیم؟ بازرگان پیر جواب داد الی حضرت باید منو ببخشید اما یه لحظه فکر کنید، اگه شما پیکی به سمت این جزیره بفرستید، ده سال طول میکشه که پیک به اونجا برسه. ده سال هم طول میکشه که به سمت شما برگرده. یعنی بیست سال. آیا تا اون موقع این شاهزاده خانم جوون پیر نمیشه؟ زیباییش رو از دست نمیده؟ پادشاه با وقار هرچه تمومتر سرش رو به نشانه یه تعیید حرفهای بازرگان تکون داد. بعد هم به اون ها اجازه داد که بدون پرداخت هیچکونه مالیاتی توی کشور اون تجارت کنن. بعد از اینکه ها از قصر خارج شدن، پادشاه به فکر فرو رفت. خیلی سردرگم و بیقرار شده بود. به خاطر همین برای دور کردن ذهن خودش از این افکار ناراحت کننده، تصمیم گرفت که به گردش و هواخوری بره. پادشاه بلا فاصله شکارچی ها و غشی خودش رو احسار کرد. تو شکارگاه شکارچیانی که پادشاه رو همراهی میکردند تو بوخهاشون میدمیدند و گوشی ها تربیت شده خودشون رو روی دستهاشون هم میکردند. پادشاه به اتفاق همراهانش آزمه شکارگاه شد. آخرش به چمنزار رسیدن. اون طرف چمنزار، یه مزرعه گندم بود خوشه های گندم در برابر نسیم باد مثل امواج دریا پیچ و تاب میخوردن پادشاه دهنه اسب خودش رو رها کرد و همینطور که داشت منظره زیبای گندمزار رو نگاه میکرد گفت کسی که همچین مزرعه ای رو شخم زده و کشت کرده باید کشاورز با کفایتی باشه اگه تمام مزارع قلمرای من اینطوری پر بار و پر محصول می شدن، اون وقت میتونستم بیش از نیاز مردم نون تهیه کنم پادشاه خیلی کنچکاف شد تا صاحب این مزرعه رو پیدا کنه خدمتکارای پادشاه برای اجرای فرمان پادشاه پای خودشون رو تاختند مدتی پیش رفتن بعد از اون کنار یک کلبه کوچیک و زیبایی متوقف شدند. دم در کلبه هفت جوون کشاورز در حال غذا خوردن و استراحت بودند. نون گندم سیاه و یه ظرف آب غذای اون کارگرا بود. اون هفت نفر همشون پیراهنایی به رنگ قرمز با هاشیه های گلدوزی شده پوشیده بودند. اینقدر شبیه هم بودن که نمیتونستن اونها را از همدیگه تشخیص بدن. خدمتکارای پادشاه از اونها پرسیدن کدوم یکی از شما صاحب این گندم زارید؟ هفت و برادر همزمان و یک صدا گفتن این مزرعه گندم مال ماست. خدمتکار دوباره پرسیدن شماها کی هستید؟ و هفت و برادر جواب دادن ما رعیت های پادشاه آرکیچ هستیم. این جواب ها توسط خدمتکارای پادشاه به گوش پادشاه رسید. پادشاه دستور داد هفته برادر رو احسار کردند. وقتی که از اونا پرسید که خودشون رو معرفی کنند، بزرگترین برادرشون جواب داد ما همه گی رعیت های حضرت هستیم. اسم همه ما سیمونه. پدرمون قبل از مرگش به ما چیزهای یاد داده. به ما یاد داده که به پادشاهمون وفادار بمونیم. روی زنین کار کنیم و با همسایههامون مهربون باشیم. همینطور پدرمون به تک تک ما یه فن و هنر متفاوت یاد داده. چون فکر میکرد تو زندگی به دردمون میخوره. در زم بهمون توصیه کرده که از خاک سرزمینمون قافل نشیم. چون در مقابل کاری که روی زمین انجام میدیم، پاداش لازم رو میگیریم. پادشاه از حرفای این کشاورز درستگار و صادق خیلی خوشحال شد. بهشون گفت شما انسانهای لایق و شایسته‌ای هستید به خاطر تلاش و زحماتی که روی این زمین کشیدید حالا محصول طلاییتون رو برداشت میکنید اما من مایلم درباره‌ی فنون و هنرهایی که پدرتون به شما یاد داده بیشتر بدونم سیمون اول گفت حرفهی که من یاد گرفتم کار ساده ای نیست علا حضرت اگه شما یه تعداد کارگر و یه مقدارم در اختیار من قرار بدید اون وقت میتونم یه ستون عظیم و سفیدی به بلندی عبرها بنا کنم پادشاه گفت: این خیلی عالیه خب سیمون دوم حرفه تو چیه؟ علا حضرت حرفه من چیز سختی نیست وقتی برادرم اون ستون بلند رو بنا میکنه من میتونم از اون بالا برم و از بالای اونها همه ی گوش و کنار این دنیا و زیر این آسمون کبود رو ببینم و بعد براتون بگم. بسیار خوب. و حالا تو سیمون سوم تو بگو. آلی جناب کار من خیلی ساده است. شما کشتی دارید که به وسیله مردای آگاه و ماهری ساخته شده. اگه مایل باشید من میتونم تو سه شماره قایق سادهای براتون بسازم. اما این قایق ساده و خونگی من خیلی کچکتر از اونه که علا بتونه سوار اون بشه. اگه بعضی از سفرهای دریایی رو که کشتی های شما تو مدت یک سال میرن و میان قایق من همچین سفری رو میتونه تو یه شبانه روز طی کنه. و اگه این سفرها ده سال طول بکشه قایق من همون مسافت رو تو مدت یک هفته میره و بر میگرده. پادشاه گفت خیلی خوب. حالا تو برام بگو سیمون چهارم تو بگو چه مهارتی بلدی سیمون چهارمم گفت کار من واقعا مهم نیست وقتی برادرم اون قایق رو بسازه اون وقت من میتونم سوار اون بشم اگه دشمن منو تعقیب بکنه میتونم قایق رو غرقش کنم و زمانی که دشمن از محل دور شد میتونم دوباره اون رو به سطح آب برگردونم پادشاه جواب داد واقعا کار چندان ساده ای نیست. این زرنگی و تیز تو رو میرسونه. رسونه. خب، سیمون پنجم، تو چی کار بردی انجام بدی؟ علا حضرت، کار من صرفا آهنگریه. دستور بدید یه کارگاه آهنگری بر من بسازن. اون وقت من میتونم یه کمون زنبورکی درست کنم و با این کمون اقابهای آسمون و حیونای وحشی جنگل در امان نیستن. راحتی میتونم اونها رو مورد هدف قرار بدم پادشاه هم گفت وسیله مفید و جالب توجهی به نظر میرسه. و حالا سیمون ششم تو مهارتت رو بگو. آلی جناب از گفتن مهارتی که بلدم خجالت میکشم. اگه برادرم شکاری رو که با کمون زنبورکیش سید کرده من میتونم اون رو زودتر از هر سگ شکاری بگیرم. حتی اگر تو آبم بیفته من میتونم اون رو از اعماق آب بیرون بکشم. و یا اینکه اگه تو جنگل تاریک هم افتاده باشه من میتونم اون رو تو تاریکی نیمه شب پیدا کنم. پادشاه از شنیدن مهارت‌های این شش برادر خیلی خوشحال شده بود. بهشون گفت: از شما رعیت ها ممنونم. پدرتون تو یاد دادن این مهارت‌ها به شما کار فوق‌العاده‌ای انجام داده. حالا باید با من به شهر من بیایید. چون میخوام مهارتهای شما رو مشاهده کنم من دوست دارم آدمایی مثل شما اطراف من باشن وقتی هم که زمان برداشت محصول برسه همه شما با هدایای سلطنتی به خونتون برمیگردید برادرای سیمون در مقابل پادشاه تعظیم کردن و گفتن هر طور که پادشاه صلاح بدونن اما یه دفعه پادشاه یادش اومد که از سیمون هفتم هیچ سوالی نپرسیده سیمون هفتم رو صدا کرد و بهش گفت تو چرا ساکتی مهارت تو چیه سیمون هفتم جواب داد من حرفه خاصی بلد نیستم اعلی حضرت من چیزی یاد نگرفتم و کاری از دستم ساخته نیست اگرم کاری بلدم نمیتونم اون رو در ردیف یه حرفه یا مهارت بدونم در واقع کاری که برادم یه نوع تردستیه. کارم یه جوریه که هیچ کس حتی اعلی حضرت هم نباید ببینه. نمیدونم آیا این کار من مورد رضایت اعلی حضرت هست یا نه. پادشاه با صدایی بلند فریاد زد. بیا جلو جلوتر. من هیچ عضر و ای رو قبول نمی کنم. این کاری که برادی چیه؟ اعلی حضرت، قبل از هر چیزی باید قول بدید که بعد از گفتن اون منو نکشید. در اون صورت کاری که برادم براتون میگم. بسیار خوب. قول میدم که تو در امان باشی. اون وقت سیمون هفتم یه قدم عقب رفت و گلوش رو صاف کرد. گفت الا حضرت کارم طوریه که اگه هر کس تو قلم روی شما مرتکب اون بشه جونش رو از دست میده. و جایی که هیچ گونه بخششی هم نیست تنها کاری که به خوبی از عهده انجام دادن اون برمیام دزدیه. من میتونم کوچکترین چیزی رو که سرقت میکنم مخفی کنم حتی گودترین سیاه با درای آهنی قفل شده هم نمیتونم مانع دزدی من بشن وقتی پادشاه حرفای سیمان هفتم رو شنید خیلی عصبانی شد گفت من هرگز تو رو نمیبخشم ای آدم رزل و پست تو باید تو تاریکترین و مخوفترین سیاهچال زندونی بشی تا برای همیشه این حرفه از کلت بیرون بره البته بهتر هرچه زودتر تو رو به مجازات مرگ محکوم کنم سیمون هفتم گفت آلی جناب خواهش میکنم گذشت کنید. من اونطورم که شما فکر میکنید آدم بدی نیستم اگه قرار بود این کارو بکنم به راحتی میتونستم خزانه سلطنتی شما رو خالی کنم اون وقت به قاضی شما هم رشوه دادم تا منو از زندون بیرون بیارن و با باقی مونده اون ثروتی هم که به دست آوردم میتونستم برای خودم یه قصر مرمرین بسازم اما هر چند که حرفه دوزی رو به خوبی بلدم و تو این کار مهارت دارم ولی تا به حال این کارو انجام ندادم شما خودتون درباره حرفه ای من سوال کردید اگه منو بکشید یعنی در واقع زدید زیر قولتون. پادشاه گفت خیلی خوب من تو رو نمی کشم و میبخشمت اما از این لحظه به بعد تو باید توی سیاهچال زندونی باشی بعدش هم به نگهبوناش دستور داد که اونو به سمت زندون ببرن پادشاه به برادرای سیمون گفت همراه من بیاید و مطمئن باشید که از لطف پادشاه بی نمیمونید. و اینجوری بود که شش شیشتا برادر سیمون به دنبال پادشاه به راه افتادن. اما برادر هفتم توی سیاهچا زندونی شد و قرار شد غذاش هم فقط یه تیکه نون و آب باشه. وقتی که به قصر پادشاه رسیدن، روز بعد پادشاه یه تعداد نجار و بنا و آهنگر و کارگر، در اختیار سیمون ها قرار داد تا ساخت و ساز خودشون رو شروع کنن. اونو بعد از مدتی ستون بلند و سفیدی رو که نوک اون تا ابرها می رسید بنا کردن. بعد سیمون دوم از اون ستون بالا رفت. هر چیزی رو که میدید و میشنید بعد از اینکه از اون ستون پایین میومد برای پادشاه تعریف می کرد. اینکه که چجوری پادشاهی داره برای نبرد با یه پادشاه دیگه به میدون جنگ میره و کدوم یکیشون احتمالا پیروز میشه یا توی کشور دیگهای مراسم جشن برپا بود و تو سرزمین دیگهای مردم از گروسنگی و قهطی با مرد دست به گریبان بودن در واقع سیمون دوم کوچیکترین حوادث جهان رو برای پادشاه تعریف میکرد هیچ چیز از چشم سیمون دوم مخفی نموند. بعد هم نوبت به سیمون سوم رسید. اون هاشو یک، دو، سه بار باز بسته کرد و گفت: "کشتی عجیب من آماده است." با اشاره دست پادشاه، کشتی به آب انداخته شد. کشتی مثل یه پنده سباکوان روی امواج آب به حرکت درآمد. بادبوناش برافراشته شده بودن و نوازنده ها هم سرگرم نواختن آهنگ های زیبا بودن. در حالی که کشتی روی آب حرکت میکرد سیمون چهارم با دست های نیرومند خودش تو یه چشم به هم زدن اونو به زیر آب برد و کشتی از نظر همه ناپدید شد. یک ساعت بعد کشتی دوباره به سطح آب برگشت و در حالی که سیمون با دست راست خودش اون رو هدایت می کرد، با دست چپش هم یه ماهی عظیم و جسه ای از اعماق آب برای میز غذای سلطنتی سید کرده بود. همون موقعی که این ماجراهای جالب داشت اتفاق می سیمون سیمان پنجم تو کارگاه آهنگری خودش سرگرم ساختن کمان زنبورکیش بود. وقتی پادشاه از بندر برگشت، کمون زنبورکی هم آماده بود. پادشاه تو دشت وسیعی ایستاد و سرش رو بالا گرفت. باسمون با نگاه کرد. تو ارتفاع خیلی زیاد عقابی در حال پرواز کردن بود که لحظه به لحظه داشت اوج می گرفت. وقتی از زمین بهش نگاه میکردی مثل یک لکه سیاه به نظر می رسید. پادشاه گفت، اگه بتونی اون عقاب رو هدف قرار بدی، پاداش خوبی بهت میدم. سیمون لبخندی زد، بعد کمونش رو آماده کرد و عقاب رو نشونه گرفت. یه لحظه بعد تیر از کمان رها شد. اوغاب پایین افتاد. همون لحظه سیمون ششم مثل برق دوید و قبل از اینکه که روی زمین بیفته اون رو گرفت و پیش پادشاه آورد. پادشاه گفت: آفرین به توی جوون شجا. پادشاه به برادرای سیمون گفت هر کدوم از شماها تو کارتون خیلی ماهرید. بهترین پاداش ها رو بهتون میدم. حالا بهتره برید یکم استراحت کنید و غذا بخورید برادرای سیمون سر تعظیم فرود آوردند و مرخص شدند هنوز چند قدمی دور نشده بودن از قصر که قاصدی به سمت قصر پادشاه اومد پادشاه مجبور شد دوباره برادرای سیمون رو احضار کنه پادشاه به برادرای سیمون گفت گوش کنید دوستان عزیز من مشاورهای باهوشو خبره من حرف هایی زدن که بهتر شما هم بشنوید. تو سیمون دوم از اونجایی که میتونی از اون ستون مرتفع بالا بری مایلم که دوباره این کار رو انجام بدی و هر اونچه که اونجا میبینی و میشنهی برای من گزارش بدی. به من خبر دادن که اون طرف دریاها قلمروی توی جزیره بوسان تحت حکومت پادشاهی اداره میشه که دختر خیلی زیبایی به اسم شاهزاده خانوم هلنا داره. سیمون دوم بلا فاصله بعد از شنیدن فرمان پادشاه دوان دوان به طرف ستون مرتفع رفت. با سرعت ازش بالا رفت. بعد از اینکه همه چیز رو از نظر گذروند دوباره پایین اومد و اون را که دیده بود و شنیده بود به اطلاعی پادشاه رسوند. سیمون دوم به پادشاه گفت آلی جناب من فرمان شما را اطاعت کردم. اون دوردست ها توی جزیره بوسان پادشاه اون سرزمین خیلی مقتدره اما خیلی هم خودپسند و زورگو و ستمگره اون روی تخت خودش میشینه و ادعا میکنه که هیچ پادشاهی روی زمین وجود نداره که لیاقت همسری دخترش رو داشته باشه و در نتیجه تصمیم گرفته که دخترش رو به هیچ کس نده اگر هم پادشاهی خواستار ازدواج با دخترش باشه فوری علیه اون وارد جنگ میشه و حکومتش رو از بین میبره پادشاه پرسید آیا اون تعداد نیروهاش بیشتر از نیروهای منه سرزمین اون کجاست سیمون جواب داد تا اونجایی که میدونم در صورتی که هوا مساعد باشه و دریا طوفانی نشه رسیدن به اونجا ده سال طول میکشه اگرم هوا طوفانی باشه شاید دوازده سال طول بکشه من نیروهای اون رو دیدم سپاه چندان مقتدری نداره سپاه اون صد تا پیاده نظام و صد تا هم سوار نظام داره. علاوه بر اون نیروهای گارد مخصوص و کماندارهای ماهری هم داره که تعدادشون بیشتر از صد هزار نفر هم. داره که تو موقعهای خاص به میدون جنگ میان. پادشاه مدتی به فکر فرو رفت. به مشاورا و نجیبزاده های دربار که دورش حلقه زده بودن گفت من هر طور که شده باید با شاهزاده خانم هلنا ازدواج کنم. اما چجوری میتونم تصمیم خودم را عملی کنم؟ مشاورا و نجیب زاده های پادشاه سکوت کردند. سرشون رو پایین انداختن. اما سیمون سوم شروع حرف زدن کرد. به پادشاه گفت: اله حضرت ببخشید. اگه اجازه بدید من پیشنهادی دارم که میخوام براتون مطرح کنم. آیا مایلید به جزیره بوسان برید؟ کدوم را راحتتره. اگه سوار کشتی من بشید، به جای اینکه ده سال تو سفر باشید، یه هفتهی به اونجا میرسید. حالا از مشاورای خودتون درباره اینکه وقتی به اونجا رسیدیم چیکار باید بکنیم سوال کنید. آیا میتونن توی محیط دوستانه شاهزاده خانم رو بگیرن و به اینجا بیارن؟ یا با جنگیدن موافقند اما دانشمنده و مشاورای پادشاه همچنان سکوت کرده بودند و هیچ چی نمیگفتند پادشاه اخمش تو هم رفت و خواست با یه لحن تندی چیزی بگه که یه دفعه دلغه که دربار از بین مشاورای پادشاه راه خودش رو باز کرد و جره اومد و گفت شما آدمای باهوش و سیاست مدار چی به سرتون اومده که اینجوری ما تو شدید موضوع خیلی ساده است. همونطور که گفتیم رسیدن به اونجا خیلی هم طول نمیکشه. علاوه چرا از سیمون هفتم کمک نمیگیرید اون به راحتی میتونه توی یه چشم به هم زدن شاه ساده خانم و پدرش رو بدزه و به اینجا بیاره. فراموشم نکنید که اگه قرار باشه سپاهیان اونا به سرزمین ما لشکر کشی کنند ده سال طول میکشه تا به اینجا برسند نظرتون در رابطه با نقشه من چیه؟ پادشاه با خودش گفت چه فکر خوبی خیلی عالیه به همین دلیل من بهت پاداش خوبی میدم بعدم به و دستور داد که فوراً سیمون هفتم را از زندون آزاد کنن طولی نکشید که سیمون هفتم پیش پادشاه اومد پادشاه توضیحات لازم رو بهش داد و در ضمن اضافه کرد که این کار به نفع کشور و پادشاهه هرچند که از نظر من کار درستی نیست سیمون هفتم رنگ پریده و خسته بود. اما سرش رو به نشانه یه تصدیق عرفای پادشاه تکون داد. پادشاه گفت بیا نزدیکتر و به من حقیقت رو بگو. آیا این کار از دست تو بر میاد؟ سیمون هفتم گفت چرا که نه. این کار برای مصابه خوردنه. کشتی برادرم رو پر از پارچه های ابریشم و انباع کالاها و مروارید و جواهر و فرشهای ایرانی کنید. منم همراه اونها بفرستید. مایلم که برادر چهارمم هم همسفر من باشه. میتونید اون دو تا برادر دیگم هم به عنوان گروگان پیش خودتون نگه دارید. وقتی پادشاه حرفهای اون رو شنید شور و شوق عجیبی سر تا سر وجودش رو فرا گرفت. بعد هم دستور داد که خواسته های سیمون هفتم رو مو به مو اجرا کنن. بلا فاصله، هر کسی دنبال یک کاری رفت تا اوامر پادشاه هر چه زودتر اجرا بشه. تو مدت کوتاهی کشتی عجیبی که پر از کالاهای مورد نظر بود آماده شد. پنج برادر سیمون از خدمت پادشاه مرخص شدن و سوار کشتی شدن. طولی نکشید که بادبانهای کشتی باز شد. کشتی از نظرها ناپدید شد و روی انواج آب مثل یک شاهین تیز پرواز به حرکت درآمد. یک هفته بعد کشتی نزدیک جزیره بوسان رسیده بود. ساحل بوسان تحت مراقبت شدید نگهبونای پادشاه بود. دیدبان از بالای برجک دیدبانی از دور فریاد زد. توقف کنید و لنگر بندازید. خودتون رو معرفی کنید. از کجا میایید و اینجا چیکار کار میکنید؟ سیمون هفتم از روی عرشه کشتی جواب داد ما مردمانی صلح دوستیم. از کشور پادشاه آرکید میایم. توی کشتی کاله های مختلفی داریم. پارچه های زربافت و ابریشمی فرش و جواهر های گیرون قیمت که مایلیم پادشاه و شاهزاد خانوم هم اونها رو ببینن. ما دوست داریم تجارت کنیم کالاهامون رو با کالاهای شما می میکنیم برادرای سیمون قایقی رو توی آب انداختند و مقداری از کالاهای ارزش خودشون رو توش جاسازی کردند پاروزنون به سمت ساحل رفتند و بعد هم یک یکراست به سمت قصر پادشاه بوسان شاهزاده خانوم تو اتاقی که دیوارهای اون به رنگ گلرز بود نشسته بود. وقتی که برادرای سیمون رو دید، ندیمش رو صدا زد و به اون گفت که درباره اونها تحقیق کنند و بپرسند که برای چه کاری به اینجا اومدن. سیمون هفتمم رو به ندیمه کرد و گفت ما از کشور پادشاه آرکیز مهربون به اینجا اومدیم. کالاهای مختلفی رو با خودمون آوردیم که اینجا داد و ستت کنیم. ما به پادشاه این سرزمین اعتماد داریم. و امیدواریم که از حضورمون تو سرزمینش رضایت خاطر داشته باشه. و به خدمتکارای خودش خودشم دستور بده که از کالاهای کشتی ما مراقبت کنن. اگه پادشاه کالاهای ما رو قابل بدونند و برای اطرافیانشون خریداری کنن خیلی خوشحال میشیم. صحبتهای سیمون هفتم به اطلاع شاهزاده خانم رسید. شاهزاده خانم فوری دستور داد تا برادرای سیمون رو به اتاقش هدایت کنند. برادرهای سیمون وقتی وارد اتاق شاهزاده خانم شدند تعظیم کردند. یه مقدار از پارچه‌های مخمل و ابریشم و سنگ ها و جواهرهایی که همراه خودشون داشتن رو در معرض دید شاهزاده خانم قرار دادن. شاهزاده خانم تا به حال تو عمرش چنین چیزهای با ارزشی رو به چشم ندیده بود. ندیمه ها و همراههای شاهزاده خانم هم هاج و واج خیره نگاه کردند. انها در گوشه هم میگفتن چه کالاهای زیبایی؟ شاهزاده خانوم از دیدن این همه کالا شگفت زده شده بود. لحظه چشم از اونها بر نمیداشت. جواهرات رو بر داشت و در برابر نور به اونها نگاه میکرد. یکی از سیمونها گفت شاهزاده خانم مهربون و زیبا خوشحال میشیم اگه از پارچه های ابریشم و مخمل و همینطور از جواهرات برای ندیمه های خودتون انتخاب بکنید. البته این کالاها خیلی هم چیزای خاصی نیستن. توی کشتی پارچه‌های قیمتی تر رو با عرضه هم داریم. و همچنین سنگ‌های قیمتی. چون نمی‌دونستیم که این کالاها تا چند دازه مورد توجه خانواده سلطنتی شما قرار میگیره مجبور شدیم که یه مقدار مختصری رو با خودمون بیاریم. اما اگه افتخار بدید، خوشحال میشیم که از کشتی ما بازدید کنید. و هر کدوم رو که مایل بودید انتخاب بکنید. حرفای معدبانه و محترمانه سیمون شخصتر رو خیلی خوشحال کرده بود. به خاطر همین پیش پادشاه هفته گفت پدر، یه تعدادی بازرگان لحظات پیش وارد سرزمین ما شدند. کالاهای خیلی با همراه خودشون آوردن. اجازه بدید که از کشتی اونها دیدن کنیم. من خیلی دوست دارم که اونها رو ببینم و انتخاب بکنم خودشها به فکر فرو رفت، ولی بعد موافقت خودش رو اعلام کرد. دستور داد که کشتی سلطنتیش رو همراه با 100 نفر تیرانداز و 100 هزار نفر سرباز آماده کنند تا همراه شاهزاده خانم باشند و از اون مراقبت کنند. و بالاخره کشتی سلطنتی همراه با شاهزاده خانم و اون نفراتی رو که قرار بود شاهزاده رو همراهی کنند برا افتادن. برادرای سیمون هم روی عرشه کشتی خودشون اومده بودن تا شاهزاده خانم رو به سمت کشتی راهنمایی کنند. پل بلورینی بین دو کشتی قرار داده شد تا شاهزاده خانم از روی اون عبور کنه و وارد کشتی برادرای سیمون بشه. سیمون هفتم کالاها و ها و جواهرات رو, رو به روی روی شاهزاده خانم پهن کرده بود و در مورد هر کدوم از اونها داستانهایی رو برای شاهزاده میگفت. همین کار باعث شده بود که شاهزاده خانم همهی ی به حرفهای اون باشه. در نتیجه سیمون چهارم از فرصت استفاده کرد و توی چشم به هم زدن کشتی رو توی آب غرق کرد. کشتی از نظرها ناپدید شد و به اعماق آب رفت. خدمه کشتی سلطنتی فریاد کشیدن. سربازا از شدت ترس زبونشون بند اومده بود و هاج و واج مونده بودن. کاری نمیتونستن بکنن. در نتیجه کشتی سلطنتی فوراً به ساحل برگشت تا ماجرا رو برای پادشاه تعریف کنه. پادشاه از شدت خشم و ناراحتی های های زاری میکرد و گریه میکرد. میگفت دخترم آقبت این قرور و خودپسندی کازه به من کار دستم داد. من هیچ کس رو لایق همسریه با تو نمیدونستم و حالا تو رو از دست دادم و به اعماق دریا رفتی و منو تنها گذاشتی ی این آدمایی که همراه تو فرستاده بودم رو باید به زنجیر ببندم تا بعداً درباره مجازاتشون فکر کنم. همون موقعی که پادشاه بوسان به خاطر از دست دادن دخترش از شدت خشم گریه میکرد، کشتی برادرای سیمون مثل یک ماهی زیر آب پیش میرفت. زمانی که جزیره بوسان کاملاً از نظرهاشون ناپدید شد، کشتی دوباره به سطح آب اومد. همون لحظه شاهزاده خانم به خودش اومد و ندیم هاش رو صدا زد و گفت به نظر میرسه که خیلی وقت ما سرگرم تماشای این کاله شدیم. امیدوارم که پدرم از این تأخیر ما ناراحت نشده باشه. شاهزاده خانم از جای خودش بلند شد و به عرشه کشتی رفت. اما نه از کشتی سلطنتی خبری بود و نه از جزیره بوسان. شاهزاده هلنا از شدت ناراحتی دست‌هاش رو مشت کرده بود. خودش رو به شکلی قوی سفید درآورد و از روی ارشه پرواز در اما سیمون پنجم با کمون زنبورکی خودش قوی سفید رو مورد هدف قرار داد. و سیمون ششم هم قبل از اینکه اون تو آب بیفته، قوی سفید رو گرفت. قوی سفیدم هم همون لحظه تبدیل به یک ماهی ای شد. اما سیمون لحظه‌ای درنگ نکرد و ماهی رو هم گرفت. اما ماهی بلافاصله به یه موش سیاه تبدیل شد و روی عرشه کشتی دنبال جایی میگشت که خودش رو مخفی کنه. و قبل از اینکه اون موش سیاه بتونه وارد سوراخی تو عرشه کشتی بشه، سیمون سریعتر از هر گربه‌ای اون رو شکار کرد. و دوباره اون موش سیاه تبدیل به شاهزاده خانم هلنا شد. یه روز صبح پادشاه آرکید کنار پنجره ایستاده بود و در حالی که به دریا نگاه میکرد غرق در فکر بود. قلبش سنگینی میکرد. اشتهاش کور شده بود. هیچ چی نمیتونست بخوره. همه یه فکر و ذکرش پیش شاهزاده خانم هلنا بود. به دست آوردن هلنا براش شده بود یه رویا. همینطور که به دریا نگاه میکرد با خودش گفت اون چیه که داره به من نزدیک میشه؟ یه مرغ دریاییه؟ یا بادبان کشتی؟ نه درسته اون مرغ دریایی نیست. اون کشتی عجیب و غریب خودمونه که بادبوناش دارن تکون میخورن. پرچم کشتی هم بالاست. نوازنده هم در حال نواختنن. کشتی نزدیک ساحل لنگر انداخت. پل بلورین بین ارشه و ساحل قرار داده شد تا شاهزاده خانم هلنا از روی اون پل بگذره و قدم به ساحل بگذاره. هلنا مثل آفتاب می درخشید. برق چشماش مثل ستاره های آسمون شب به نظر می پادشاه پادشا با سرعت خودش رو به ساحل رسوند. فریاد میزد عجله کنید زنکار رو به صدا در بیارید شادی کنید. همه گه و خدمتکارای قصر گروه گروه به سمت ساحل می رفتن فرش های روی زمین انداختند تا شاهزاده خانم روی اونها قدم بزنه دروازه های ورودی هم برای استقبال از ورود شاهزاده خانم باز شده بودند پادشاه دست شاهزاده خانم رو گرفت و به سمت قصر سلطنتی خودش راهنمایی کرد بهش گفت شاهزاده خانم وصل زیبایی هاتون رو خیلی شنیده بودم اما فکر نمی کردم که تا این حد زیبا باشید با این حال من مایل نیستم که شما رو برخلاف میل قلبیتون اینجا نگه دارم اگه بخواید میتونید به وسیله کشتی خارقلاده ما پیش پدرتون و کشورتون برگردید اما اگه مایل باشید اینجا اقامت کنید اون وقت ملکه این کشور میشید و میتونید توی اداره امور به من کمک کنید شاهصاد خانم. به دقت به حرفهای پادشاه و خاصگاری اون گوش می‌داد. مراسم نامزدی اونها با چنان شور و شوق فراوانی برگزار شد. برادرای سیمون به فرمان شاهزاده دوباره به جزیره بوسان برگشتند. اونها نامه ای از طرف شاهزاده خانم برای پادشاه بوسان بردند. و ازش دعوت کردند که در مراسم ازدواج دخترش شرکت کنه. کشتی خارقلاده پادشاه درست لحظه‌ای به جزیره بوسان رسیده بود که پادشاه داشت همه سربازایی که دخترش رو به اونها سپرده بود به مجازات مرد محکوم میکرد. اونها به میدان اعدام برده شده بودن. همون لحظه سیمون هفتم از روی کشتی با صدای بلند فریاد زد دست نگه دارید. دست نگه دارید، من حامل نامهی از طرف شاهصاد خانم هرنا هستم. پادشاه بارها و بارها نامه رو خوند. و سرانجام هم دستور و آزادی سربازه رو صادر کرد پادشاه بوسان از برادرای سیمون استقبال گرمی به عمل آورد و برای دخترش هم آرزوی خوشبختی کرد اما تو مراسم ازدواج شرکت نکرد وقتی برادرای سیمون سوار بر کشتی عجیب و غریبشون از راه رسیدند پادشاه آرکیز مهربون و شاهزاده خانم هرنا هم از شنیدن خبر رضایت پادشاه بوسان با ازدواج دخترش خیلی خوشحال شدن. پادشاه هفت برادر رو احضار کرد و به اونها گفت دوستایی شجای من، از شما سپاس گذارم. هر که طلا و جواهر بخواید در اختیارتون میذارم. آیا چیزی هست که شما آرزوی داشتن اون رو داشته باشید؟ کافیه فقط لب کنید. اگه بخواید من میتونم هر کدوم از شماها رو به عنوان حاکم یکی از شهرهام منصوب کنم. هر آرزوی دارید براتون برابرده میکنم. بزرگترین برادرای سیمون در مقابل پادشاه تعظیم کرد و گفت علا حضرت ما افراد ای هستیم و چیزهای ساده رو خیلی خوب میفهمیم. ما نمیتونیم حکمران جایی باشیم. طلا و جواهراتم که دوست نداریم. ما مزرعی داریم که توش کشاورزی میکنیم و از راه محصولی که به دست میاریم زندگی خودمون رو میگردونیم. اگه میخوایید به ما پاداش بدید دستور بدید که ما از پرداخت مالیات معاف باشیم. و همینطور یه لطفی کنید و سیمون هفتم رو عفت کنید. برادر ما اولین نفری نیست که تو این حرف مهارت داره. آخرین نفرم نیست. پادشاه جواب داد همه خواستهاتون رو میپذیرند. مذراتتون از پرداخت مالیات معفق و برادرتون سیمان هفتم رو هم میبشن. اون وقت پادشاه ازشون دعوت کرد که تو مراسم جشن ازدواجش هم شرکت کنند. و چه جشن باشکوهکی هم برگزار شد. کانال تلگرامی هزار افسان، داستان‌های افسانه‌ای صوتی. نشانی کانال تلگرامی، تی نقطه می مهران دوستی تی نقطه ام نشانی وبلاگ ما ام BFA نقط مهران دوستی. blogva.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستی.